که از شوکه رو بعد از مضمون شیخ در کتاب اصول احکام مورد بحث آورده بنابراین که تقریبا مبنای بحث شد که در جمله ای از مواحظ مورد بحث گرار بگیره و به عبارت نقرام در غصاته شیخ مبحث قرد و عنوان یک یکی مقصد قرار بگیره در مقابل زن و شک و در مبحث قرد چند مسئله رو به اصلاق خلوش مورد بررسی قرار بگیره که سعی شد با این ترتیب تلویزا جز مسائل و اصول قرار بگیره از که در کتابی که حالا من خوال دارن در کتاب احسانت و شیعه حسولا مرفس قرد ذهب نشده بود در بعضی کتاب های قبلشه مثل مفاتی مرفس قرد به عنوان مقدمه مقدمه بحث توجیهت روی شد دکن دیگه برده ها به ترتیب سواتی یک مقصد در آن. و این مقصد که قرد خود باشه مطلقا از هر کسی در هر جهتی و هر چیزی تعلقویه در اعتباس قانونی از کرده این نیست و خود مرمون صاحب مفاتیش که قبل از شیخ بودن مرمون سید محمد مجاهد ایشون موضوع بحث رو اینو قرار بودن که مشته اگر در حضر میکرد و قصد پیدا کرد قصد برای حجب تحبیرشان اینه هم میگن و به جمعه اغلا میکنند میکنن به شراق قصد که از آنها نیست میگه که قصد را مثلا توی این عملن از این احبارات مرمومه مجاهد دارید که مثلا روق و غلایی نه نقلی و ذاتی که در اصطلاح ما آمده و از این احباراتیشون معلوم میشه که اون قصد هم در حدود مشهد و بعد از سخص و بخص از علله و اینجوری حساب کرده. در صدر ایرآورت شیخ در مسائل این تو بود اینه که من المکملت از الفتت ایلام کنم که مکملت مطلب ابرسی بزرگ که مرا دیشان خصوص مشهده ظاهر ایرآور کیشان که مطلب و این خویجاتی صادق و در تکرار تقریب و هر حال این بحث اول در مرحله سخته به نظر ما مبحث دژه اول سکوسل نیست اما و هر این رو دژ هم خواست رسول بحث یعنی مجموعاً چند تا بحث رو در مدرسه قطع آیان مطرد شده. بحث دوم که این رو خود مردم شیخ هم دارن تقسیم قطع قطع تریبی و موضوعی این موضوع دوم بحث مثلا دوم که قطع تقسیم کردن به قطع تریبی و قطع موضوعی و اجمالاً این توضیح رو دادن که قد که جزوی سفات نفسانی هست اضافی برای استفاده خاصی است. خاصیست در جزوی سفات نفسانی ما یک نوع ارتباط و اضافی به خارج هم داره چون سفات کاشفیت از خارج بره اون وقت بختم به که اگر به لحاظ کاشفیتش از خارج و رابطش با خارج برنسیدشه این می که تلیدیم اگر این نفسه در موضوع دریگه عقص بشه میشه موضوعی این اجمال بحث یعنی تایه صورت اجمالیت بحث اون وقت در تقسیم قطع موضوعی هم تقسیمات بیشه قردن مواقع سیم از کردن و غیر از این خود جهد تقسیم عمده ترین دریگی رو که یعنی عمده ترین بحثی رو که آوردن این است که آیا مثلا امارات یا اصول عملیه قائم مقام کدوم یکی از این دو تا قطع میشن این خلاصه بحث طویل و است که آیان در اینجا و بعضی ها مختصرن نصدن خود خب شیخ مختصرن با بعضی با طول و تحصیل بیشتری رو من اشترم به مبحث عدوش خودمون خلاصه ای از کلمات مرموم استاد از دای خویه رو میخونید این رو مهوه بحث دارم این جاهایی که نیاز به بحث طولانی‌تر داره اشاره می‌کنم. و از خود اون بحث رو اشالله به گیری کنیم به ازمینی شوارکت ها آدم مرموم شیخ در کتاب رسائل یا همین فرایل به اصطدا این بحث تقسیم قرط رو بعد از خود رو جیهت رو بودن مرموم ناینی هم همینجور مرحوم آقای که من نمیداله کار مقرر بوده یا خود آقای خویی هم من اینجا خدمت ایشان که بزنیم چیه مطلب ایشون بعد از بحث حجیث قرد بحث تجریر رو بعد بحث تقسیل رو آوردم. از چون ممکن است مراجعه کنم ایشون بعد از بحث حجیث قرد بحث تجریر رو مطرح کردن شیخ بحث تجریر رو بعد تو تنبیهات مطرح کرده چه ایسا نتوزن این مسئله رو محرم میکنند بعد تنگیه های قرار میده آن کلی تجربی رو همینجا جزو مباحث قرار دادن که ایشادایی هم عرض که مثلا یکی از مباحث قرار هم بحث تجربی قرار کرده پس تنابراین آنها دقت قرار بکنن اگه خواستم به کتاب مراجعه کنند بعد از بحث تجربی ایشون در صفحه این چاپ جدیدی که شده از مثبا در صفحه سری و سه متعرض شدن ال کللا قطع موضوعی که این خصوص قطع موضوعی نیست تا مقابل شدهمان دادهده. السلام این قطع به موضوعی و تیلی این در این کتابیشان متأخر آمده آیا اونجا رو نگاه دارد. بعد از این ک ایشان اون صحبت صابقشون تقل ععرض کذا که، طریقیت شعن قطعه بلیه نه قد و قد یخد القدع به حکم فی موضوع این فی موضوع حکم آخر یخالف و او، لا یو او، و لا یو غاده بعد ابت این یه تقسیم بندیاری کردن راجع به قدع موضوعی که مثلا هم هست که مثلا اینطوری میگه اگر قدع فیضا کردی نماز جمعه واجبه یه جو اگر عکس که نماز جمعه واجب نه نماز ظهر مثلا اگه عکس شده که نماز جمعه واجبه نماز رو خود جمعه رو بخونه نماز جمعه لازم واجب میشه یه بحث های اینجوری رو ایشان و دیگران در اینجا مطرح کردن که البته خب من برعلن می‌کنم چون بحث سخت موضوع در لسان اعتبار این تابعه همون لسان اعتبار این به نتیجه این نمی‌ت محذوش بکنه چندین نوع لسان اعتبار واذره حالا به هر حال می شون میگن که قطع به یک حکم در موضوع حکم دیگری گرفته میشه چون ممکن است قطع به موضوع موضوع حکم مثلا یقینی در این بوله استناد شود ببینید یقین به بولیت حکم میاره اما وقتی قاعده یقینی به حکم حکم میاره یقینی در موضوع مواجهه صدر دارد مثلا سوال ممکن مثل این جهسیه مثل اینکه اذا قال المولى اذا قتعت به وجوب استاد وجب علیک تصد به در همه اینه هر دو از یک جنس من در جنس هم جنس اطلاع منطقی نیست این هر دو واجبه اضاقه ترت بوجود است. اولا که ما اضاقه هال اضاقه ترت بوجود سال همه من علیه یکیش بوجوده یکیش من از کردم این جور بحث ها هیچ نتیجه و مصمر سمر نیست یعنی تقسیم کردن قطع به موضوع قطع به حق مکنش مخالف حق هر دو بودیو بر هر دو بار مثل هر دیش ای این اینجور چی دار نتیجه نمی رسونه موضوع موضوعه که نقطه فنی نداره با دنبال نقطه فنی بار گاهی هم میگه موضوع قطعه این موضوع اینطوره مثلا ازاقه ترتب از کنه ماه خمرن وجه بلهی که اجتنابه هم بله این یک مورد هست که اینجا نگاه ده مگه آخر آورده باشن منشون تا آخر بحثیشون نگاه کنه الان تو ذهن هم نیست بعد. یه این موردشه چون آقایون باطل میدونن که ایشون امتصال اینجا را نیوردن اون هست اون موردن این هست که قطع به یک حکم موضوع خود حق قرار دیگه مثلا بگی اگر قطع کردی که نماز واجبه نماز واجبه بله صفحه 47 دارن میگم میگه ایشون من ما همه استاد جا رو جا کردن ایشون صفحه 47 دارن؟ بله سمه نهو در کرده صاحبه گفتن در کفای ناموزی موضوع نقصه که للزوم دو اونجا به این مناسبه در صفحه 47 این بحث دارن این فرضی که ایشون کردن سوالی که ایشون فرض کردن اون تکمیل فرضش به صفحه 47 اینجا 33 است. در صفحه سلحب تک میل پروزه کرده یعنی اونی که پیش آیا محل بحثه که مفصل بحث کرده اما در اول بحث زن هم خواهد آمد قطع به یک خوب علم به موضوع همون رو بکنه قرار بیدیم مثلا اگر بگه اگر دانه سینماز جمعه واجبه نماز جمعه واجبه این رو داره این رو در بحث زن هم داره و این یک تصوری شده حالا این امراه تا بحث کردن گفتن میشه دیگوستن مستحیل دور لازه میاد الان بعد انتون کنم این رو اصلا چرا مطرح کردن اصلا بگر ازالا جنبه های دور لازه میادر نمیاد اصلا این آیا در اعتباس خانونی این معنا داره این هست هم چیزی دورشو اینها بیرز مثالی دور اصلا بگر اگر شما دانستید که دادن مالی های واجبه واجب میشده دارد اگر دانستی واجب وقت واجب میشه اصلا این هست در اعتبارات قانون ما همچیزی هست که آن ما بحث بکنیم دور لازه میاد دور لازه نمیاد و اصلا چرا این بحث آقایان مطرح کرده این مطرح بحث به خاطر مسئله تصویر بود که به اشایر نسبت دادن نگفتن حکم الله علم مشهده یعنی تابع اون ما عبدالله علیه اشتحاط و الاستنباه اون بحث معروف بود وکه خواهد آمد یاد من چون بعد خواهم گفت اینشالله عرض خواهم کردن همونجا اصلا اون بحث آیان این نبوده که علمای ما این مثلا متاخلین روش خیلی ما دادند و بحث کردند و بحث مختلف ممکنه اصلا بحث اونجا نبود که علم به حق مسترزم ثبوت یعنی علم به موضوع از برای ثبوت خود خوب. این نبوده بحث سریعه این حرفا نبوده من امروز تو از اشاره میکنم اما تصدیلش اینجا این بحث این بوده خوب درست بکنیم این بحث اینجوری بوده که ما در دیدیادی از احکام در دیدیادی از موارد از موضوعات حکم نداریم شاره حکم نکرده خوب بکنیم اون اگر اگر او مشته خوب انعز بکنیم با اشتحاد و استنباط، به یک نتیجهی رسید اون میشه حکم واقعی نه که علم و حکم وضوع است اشتباه نشید دست اصلا اون نبود یعنی چی؟ یعنی پس این در پس دست در مثلا در جزای شور بخن ما حکم نداری تقام بر نکم داری شور بخن چه از سلاح اگر مشکل گفت هشتا تا این حفظ ثابت میشه اگر ترد غیر مشکل رو 80 تا ثابت نمیشه یعنی این باید از پریر یک نوع اشتحاض استنباد و خبرویت باشه این اگر برد این درست که این میمونه این خانه چند میارده شما همینجوری میرده مثل بیس مدیون بیان آروه هر شما اعتماض می کن حالا رفت نیست یک معمار متخصص کل سن بو بریست میدون. میگن اعتماد بکنه این یه چیز شبیه اینه خب یه معمار دیگه بیست و دو میگن هم اعتماد بکنم یه معمار دیگه بیشده میدون میگن اون هم اعتماد بکنیم خب تعمال بودن شما اینجا چی تصمید تحریر تو چیه الان بنای علماء این هست که همه قبول بکنن دقیقه شد اینه که میگن همه معدل بگیر این که میگه معدل بگیری رو چند جد بحث داریسی یعنی یکی با 22 میلیون یکی با 21 ملیون 40 میلیون یکی با مثلا 20 ملیون 60 ملیون تقسیل بسته کن 20 ملیون پس دیمه دوست 20 ملیون چرا همه رو چه می کند؟ چرا همه قبول کرد شدیه این رو حالا آیا این واقعا وقتی این معمار میگه 20 میلیون قیمت خونه اگه همه واقع. رو واقعی این مع یا این که خودش خرج رجالات و اوغلادی و خصوصیات و ذرافت‌هاش چه تاثیر داره یک چیز مثل رنگ الرمز رنگ سفید نیست اونا بحثشون این بود که اگر یک مشعل گفت مستحب است پس برای مقلد اون مشعل مستحب و برای خود مجد. این اینه ای که علم به حکم اخذ در موضوع حکم اصلا بحث این نبوده که آقا این مطرح}={بود. حالا این مسئله‌ای که من گفتم و این مصادوری نگاه شک بکنید که اونجا که اصلی توضیح میدم به هر حال ایشون چند مثال مرحوم استاد دادم که گاهی خطعه به موضوع برای حکم اگر یقین داری این مایه خمره یا جبال اشتنابه هم. اگر یقین داری نماز جمعه واجهه یا جبال تصدق اگر یقین داری نماز جمعه واجهه یا جبال تصدق مثال های متعدد تثیره امتر. بلا جمعه عرض دو آه، این مسئله آ ما چون مسئله این جریمه مطرح است بحث بحث, بحث, بحث. این طرز بحث اون قلاغی نیست الان کلام را دوستان بحث علم و موضوع خود اون این ابن عریضان شهوری مطرح نیست بحث علمی نیست حالا من ان اون نکته فنی بحث, بحث و عرض می‌کنم که ان شاء اولا یک مقدار طرح ابتدایی در همین بیاد تا بعد ان خود بحث مطرح بکنم یه بحثی بوده که برمیگرده در همس مثال ایم شهنش طریقه یا به صرفه مثل شما ایم که این کتاب بسرد ایش شهنش طریقه سر اون بحثی که آنجا مثلا در هده به اشتحال و استنبازه اون به میشه مثلا اشتحال و استنباز موضوع موضوعه رو قرار اون مشکل نداره علم اون چیزی که این نقطه فنی دارم گفتم بعد توضیح هر چه شانس طبیعت سرعه این تاثیر همشونه می‌گذره چیزی که طبیعت سرعه من علم دارم کتاب بس است بگی اگر علم داری کتاب بس است بس بس نمی‌شناس اگر یه ولی اون حل اون مشکلی که بگه گفتن ممکنه از علم من بشه عبد معقول رو مجبول توی اون هر طورو کاری بکنی شالله اونا به نتیجه موسیمری نمی برسه نقطه فنی اینه اگر علم شما که موضوع مواجد بشه داره همون که صرف باشه این اصلا اقلالی نیزا غیر معفولی از جیه اگر طریق صرف نباشه یک نقطه اضافه داره مثل اشتهاب داره نظر توش داره هفت توش داره این ممکن است به اون نظر خوش می بیاره این مشکل نداره ببینید اگر شما مثلا رفتید یک نفر که با این لباس مانو ناغاست میگید نه نا. اتباع نمی کن اما اختلاف اصلا پیش و قاضی قاضی که با مانو ناغاست بره چرا؟ چون قاضی منصب داره یک اضافه داره علم صرف نیست طریق صرف نیست یک منصب اجتماعی داره و رفع خسومت ببینید اون منطب اجتماعی به کمکش میرسه اون درستش میگنه با منصب اجتماعی با هر با یک چیز اضافه با یک مصلحتی با یک کاری وارد بشه اگر این طریق صرف باشه خب طریق صرف به طریق صرف کار نمی‌کنه این جور تنها مساله که علم به حب موضوع خود حکم بشه علم به وجود به وجود بشه اگر به طریق صرف باشه که اصلا نباید بحث بشه جای بحث نداره اصلا هیچ چیزی جای بحث نداره ان اینجا توضیح هم. من امروز نمیخواستم واردیم این بحث بشن بعد مرحوم آی استاد شیخ انصاری تقسیم کردن قطع موضوعی رو به قسمه این به اعتبار اندرقه قد یکونو معخوضن فی موضوع به نحوه صفتیه و قد یکونو معخوضن به نحوه طریقیه بعد مرموم و استاد یک توضیحی دادن خب این که شیخ فرمودن در موضوع معخوض در موضوع تاعتن به نحوه طریقیه از آن این میان مرموم شیخ تاعت زیاد اینشانا واضحه ببینید ما در عرفیات خودون کار به مقام نداشته نداشوشیم کار مقام اعتبارت قانون نداشوشیم مثلا میگیم آه من علم دارم کلمه علم من میگارم کلانی لفت مثلا منزدش من میدانم یعنی دیگیم من علم دارم این کار انجام گرفتم آه دردش بارم اگر دقت بکنید گاهی علم ما فقط نازره بگیم که اون واقع انجام شده علم ما رو طریق به واقع نگیریم گایی وقت نه تأکید رو این صفت داره من علم دارم من علم دارم این تأکید رو صفت داره. من همشه ایشان رو در لسان روایات در لسان عدلیه. حالا ما خواهد بشه باشه قانون باشه مثلا. وقتی کلمه علم آمد چون مجموعه روایات که توش ایل. مراد ایشان هم خصوص ها. من یه دفعه ارز کردم در لغت عرب، بلکه در هر لغتی ازه از مواد هستن طبیعت اینها جنبه تعلقی بغیر دارن جنبه مشیری و مراتی دارن یکیش فرسه یکیش سواله یکیش علمه یکیش تبیانه یکیش معرفته اینه یه مواد طبیعتشون اینه وقتی میگن فحص بکن، یه چیزی هست که چه فرس یه ادن هستن که طبیعتشون این نیست اونه ازش اینه می فهمه. ارد اینا طبیعتاً ورزنشان در وقت حرم بر این معنا و از وقت فارسی وکن ارد ازش طریقیت می فرمید. واسطه بودن می فرمید. مثلا میگه اگر در بیابان وزید شک کرد این آهرسنه برنازه یه قلبت سه که حدود دیویس میده اصطداشتی میتنید تیر پرتابه شده چهار ست مثل اون کارورد داشته که دیویس حالا به اندازه یک 400 متر بینید شما ست 400 متر از چهار طرف 600 متر به صورت بگردید این دویه ارفت چی میفهمه هستید میفهمه که طریقیت داره که این تا 400 متر آق هست یا نه این یه انتقاض ارفیست ارفت از این 400 متر تعبد موضوعی نمیفهمه خوب دقت بکنید کنید مگر روایت بیاد مثلا اگه هزار نفر یک جا هستن لازه نیز همه هزار نفر چهارسد نزید برن پنج نفرشون برن دو نفرشون برن دیگه آی نبود این چهارصد نفرن نبود کافیه این فرق باید طریقی و موضوعیه اگر موضوعی بود باید برن همه هزار نفر برن اگر تاریخی بود لازه همه هزار نفر برن دو نفر هم برن برن برست پس ما طبق این استقاضات و عرفی یک موادی به حسابه عرف به همینه طریقیت این بس تکنیم بعد من آخر بحث اجازه بکنیم چون نقطه زریفی داره ما در استقاضات و عرفی ما دقت بکنیم چیزی که جمعه طریقیت داره انصافا در صفات نفسونی چون من اون شیخ و این بس تکنیم بحث لازم بله بحث بکنم چرا ما از تکنیم بحثی بکنیم بب اونا کی صفت نفسانی مراجعه بکنی که جنبه طریقیت داره اینم باز دو جوره شیخ الان متعرض یه شده به مرحوم استاد ولی‌گرام و اون است که اونجا فقط طریقیت نشون شده اضافه صفت اضافه بهش لحاظ نشده اما اینطور نیست ما در لغت عربی در لغت فارسی الفاظی داریم چنان دیگه شرح روایات دیگه شرح ادله الفاظی داریم که جنبه طریقیت داره اضافه برای او یه صفت زیادی هم که نفس داره مثل مثلا این خواف علاقه چه اگر روزه بگیره چشمش درد بگیره این خوافه این خواف یه جنبه طریقیت داره چون رمه خواف به رمه بیگیره. می میترده چشم درد بگیره پس این طریقیت داره اضافه بر او یک صفت نفسانی هم داره که حالات خوب و حالات حالت حالات اسپرابه. علت هم داره پس اینا علم صرف نیست در علم صرف دیگر کردیم پس بنابراین اون چیزی که طریقیت داره یکی فقط خاله صرفه و کلمه بلاعظ و غدا انطلا موجه یکی فقط یه شوری معنی که که بقیهش نه شوریه چیز ریاضی اضافه هم داره پس ما اونی که طریقیت داره این نکته رو در نظر یه جاهایی فقط طریقیت صرف داره دیگه چیز دیگری نداره، صفت دیگری نداره. یه دفعه نه، اضافه برتریهت اون صفت هم داره. مثلا شلوک طریق مخوف. مخوف یعنی چی؟ یعنی داره یه آهمی رو درسته دوز اون رو بیاد مثلا انبالش بده یا حیوان درنده اون رو حمله بکنه. اینجا خوف یعنی چی؟ یعنی میدونه یه واقعی هست، پس این میشه طبیعی. در عین حال انسانی که در حال خوف است، اضطراب داره، حرج داره، زیقه نفس داره، یه حالت این طوری هم داره لگه انخافه لذا ممکن است انسان یک راگر بره حالت خوف در نفسش باشه اما مطروق نباشه دو باشه گرگم نباشه بخی این رو ببینید نی آمدن توقعه های ما الان قصولی ما بحث مثل خوف اینجا بیارن اونا هواسشون جمع بوده خب تنه علم رو تو میاریم مثل خوف تو فهم بذاریم اون تو فقر گذاشته. برای این بحث فقه هم داره که اگر روزه بگیره خیال می کنه برای میوزه شش در میگیره گرفت و نگرفت شش در نبود خوف بود حالت خوف بود اما اون مخوف نبود راه رو که تلچر حالت خوف داشت ناراحتی داشت اما اون دوز یا اون گر نبود این بحث در اونجا هم آمده اما اون بحث رو تو فقه آوردن توی بحث اصول این بخش علمش رو آوردن اینم یک مطلب آیا اصلا این مطلب اصولیه یا این فقهیه؟ اینکه علم غاری طریقی ازای موضوعی شامن در اصول بحث کرده اصلا توش نقطه اصولی داره یا نقطه فقهی داره؟ این الان من عرضم آخر بحث نتیجه گیری میکنم چون اول نذاریم بحثو ظاهری در اصول وردن اما نکته موضوعی ارزش نشد. ان شاء الله بعد عرضم. خب این تا اینجا روشن شد مگر مرحوم شیخ میخواد اینو بفرماید ما وقتی دلسان روایات مراجعه میکنیم دو جوری علم در روایات بیریم و ایشون نظرشون اینه یه دفعه مراده از علم فقط واقعه تریحیت علم شده یه دفعه مراده از علم در اون روایات اون صفت نقصانیه مثلا این با مثال کلوشه نق... نقیف حتی تعلمه انگو قدران تعلمه تا علم تیدا بکنه این علم در اینجه چیهه شیف میگه علم در اینجه یعنی چی؟ یعنی چون بدون این قدید زارتی هست نجاستی هست و لذا اگر دو نفر بیانی زا نفر عادل بیان شهادت داد این نجاست کافیه علم نمیخواه بیانم چرا چون بیانم طریقه دواقه بود اما اگر در روید آمد که شما وقتی نماز درست که یقین به صحت به عدد اول و دوم نماز. یعنی یقین داشته باشی که درکت کامله حالا شما تو نماز بودید شک کردین که رو دوم رو در رو اول شک کردید منظرک یک کدار شک کردید خوندید بازم نیخونید تا رو چی میشه با شک خوندید تمام شد بعد از نماز سهرین درست خوندید درست نماز چارکت کنید یک کدار منجام شده میگن نه نماز باطله واقع به، اما شما در دین اتیان واقع احب نداشید مرحوم اینو بگن. در اون حتی تعلمانه و قضیر علم طریقی در اینجا علم موضوعی یعنی در اینجا اون صفت علم باید باشه در اونجا صفت علم نمیخوام. چون خود علم خود قد دارای این دو نکته هم صفتون من از صفات نفسانی صفتون خاص من از صفات و هم طریقون در لسان دلیل ممکن است به این لحاظ باشه ممکن است به اون لحاظ باشه یعنی ایشون دارن برای شما شرح میدن رو، حالا این شرح اجمالی من همیزه یک گیری بکنم مریار من خدمتون ارزم به طور کلی هر جا در رسانه دریل علم آمد اصل اولی طریقیت اون موضوعیت احتیاج نقطه خاص رفته نتیجه اونجا الان به شما بگیم. پس به طور کلی برای شناخت قهر طریقی هر جا در لسان دلیل وارد شد یکی اون نقصه چیز هر چی که وارد شد اصل اولی اون طریقیتشه موضوعیتش احتیاج به دلیل داره این نقصه اول نقصه یک هر جا در لسان دلیل حکم واقع رفت اونجا هم به نهر طریقیت داره اصلا گفت فقه امم و سعیدا سعید قید نماذتون طیب هر جا حکم از رو واقع علم در تمام اون موارد بنر طبیعیته نه بچه‌ها خوب مثلا رو واسه ما ادله ما از این قبیل الا ما همه چیز این قبیل بیشتر کم ترش علم اخذ شده خاصا برای این واسه این نکته رو باید مراعات کرد که در این مورد هر نه حالا یک مطلبی رو بالاش چون مطلب رو اینجا توضیح میدم که براتون واضح بشه مرمون استاد برای توضیح مطلب در سطحیه 36 همین کتاب بله فرمودن به این که از روبه ما یو خضرقه روبه ما یو خضرقه از فیلستان دهل محل قرینه علاقه همه چون قرینه هست که دخالت نذاره و انه اقضاون فی لسان الدلیل این نماهوه لکونهی طریقا الالواقع از کردیم اولا اختص به علم نداره مثل تبیان مثل پس مثل طلبالعلم فریضتان علا کل مومن مثال معروف طلبالعلم فریضتان علا کل مومن علم به نحر موضوعی یا به نحر طریقی اگر به نحر باشه یعنی مهم اینه که شما سکیل دیدون انجام بودیم علم و اعتبار ندار پس اگر شما علم نداشیم به احکام اما پدر و مادر از اون کاری انجام داشت این ما انجام دیم بعد منشان همونم درسته عمل درست این عمل بلا اشتاده تقرید که میگرم اما اگر کم تین طلبال علم نه خود علم میخواد خود علم میخواد اون وقت لابد من تحصیل علم به احکام نسبه از داده شده به شیف در بزرساله کسی که مسائل شک و مسائل صد مسائل احکام شرعی بلد نیست این نماز جماعت نخونه امام نمیشه او این نکته اینه که میگه یکی از واجبات ترک اون طلب علم چون طلب علم واجب نفسی گرفته کسی که نرفته احکام شرعی یاد بگیره اصلا این در حقیقت فاسقه بخاطر اینکه احکام شرعی شناخت نگرفته طلب علم نکرده طلب علم جو ناست این جور فهم از روایت احتیاج به دلیل داره الان نکشه عرض کرده هر جا به طور طبیعی کلمه علم در لسان دلیل عقص شده مراد علم طبیعی علم در اونجا طبیعی بعد مرحوم استاد می فرماندی که و انعق نهو فی لسان دلیل این تعدیل اصلا نه از مقرره ایشانه عقص ورود ورودو ورود این تعدیل آمدن این در لسان دلیل نه لسانه ده عقص کنه متعارف و هم بیشتر همینه مگر نقطه خاصی باشی و صفت علم بکنه. بله. که به عنوان طریقیت عرض شده بر ایشون فهمیم و امثلت و کثیرتون مخواستم در این حال مثل بنده تده این بگم بکن واسه اصلا نه امثلت و کثیرتون صحیحش همیست که من عرض کردم قصودن علمی که در روار در لسان عدله هست مراد همین تاریخی است الا این که بر خلافش قلی بیاد به طور کلی مثلا اینجا جا اکن خواستمون به نبین فتبین این تبین یه داره. اصلا به طور کلی در مثل این موارد طریقیت مراده مگرد این که قرینه ای بیاد که مثلا فرس این آقا نه از 400 متر فرس از آب بکنه تیمون کرد بس که را افتا دید اصلا آقا اون پیدا تا هزار پیدا داری داری پیدا چون در پیدا نیشد تا 1000 متر هم پیدا در 1000 متر هم پیدا نیشد اکیه هایی ندارد تاییمه درست نماسون درست چونه اون در این جوجه ها طریقیه اون فرس طریقیه موضوعیت نداره این نیست که اگر شما فرس نکردید تعمومتون باطل باشه صحت و صغم تعموم تابعه وجود ماه اگر آب بود تعمومتون باطله مثلا دیویش نتری آب بود اگر آب نبود تعمومتون سریعه این معنای طریقیت و موضوعیت رو شد این شما فرمون تو کسیداتون من ها قول حتی تویین لکم الخیف تل و خیف تل اسود من الفرج فین الموضوع لوجوب امسا و نفس و صلوق الفت لا علم و به و از باب قضایه اتفاقی هستند همین مثالی که ایشون زدن این خیلی روشن میدید مثالیشون در انسله ایشون همین یک مثال هستند اون مثالی که شما زدید این طریقیت حتی تعلق و قدرین اما این مثالی که ایشون زدن و مثال واحد هم همین رساله واحد محل اشکاله از که شین مبدای کنه ما رو قبول کردیم معنای اینکه که طرج امر واقعی است که اصطلاحاً امروز خورشید به 18 درجه زیر زمین در افق واقعی ما برسه. پس طرجی امر واقعی است اینجا تبیین فرج مراده لكن خب اون آیاتی که در لیالی مقمر اشاره میکنن یه مدار همینجوریه که طرج امر واقعی نیست تا تازی واقعیتی نداره تغییر خودش تازیه خب بذارید اگه لیالی مقبره بود اون داره افق زود روشن نمیشه به خاطر نور ما یه مقدار زمان باید بذاره تا روشن بشه یه 15 دقیقه بذاره اصطلاح 15 دقیقه یعنی خورشید رو کل چون تقریبا از تابستان و سن میکنه تقریبا به هر به از یه درجه ای که خورشید خیل میکنه تا سعیو حدود 5 دقیقه طول حدود اگر 15 درجه سر بکنی در حدود 15 درجه برسه متواعر به فرش خودش هم اختلاف بینه الان که معروف ترین همون 18 درجه است پس برابری این این مثالی داره از قرارداد تفاوت ارزش رو خود این مثالی که اینجا فرودن این همون نقطه‌ایه که من در یکی از راه های اشعار اختلاف بین مشهدی ها هم همینه. حتی ایتره یه نرکمون خیتل عویز ببینیم این خیتل عویزنی خیتل اسرت یعنی در دایره افق روشن بشه تاریکی از روشنی روشن بشه این تباییون خودش شده رو دقت بکنید نه تحصیل یک واقعیتی از خیتل عویزنی خیتل اسرت چرایی از رو باشه حالا یک که بعضی از صحابه میگن تنگیم مورد از خیتل عویزنی اگه واسه یوجارش میذشه یستون سفیق هوا رو شاد بشه تا تشکیل بده سیاطرید رو میگه فاز شده این یعنی حتی یا تغییر رو این معنا میشه باخت نظر از این معنای فاسد این الخيط ابی از نخل خيط الاصل از نخل تحت دقت بکنید این هونجین خيط الابی از اصل این چون واقعا اگر آن بخونن مراقبت طرح بکنن در 18 درجه ما هم به اصطلاح متعارف ما فجره حالت خیف نداره فجر خیف نیست در 18 درجه که الان ما فرض میبینیم از 18 درجه هست از آن ایران تقریبه این طوریست که در روی مزار رسال سرسان و اول آرون که 23 درجه باشه شما در دایر افاق نگاه کنیم بدود 23 درجه مثل یک بلوله سفیدیده میشه اما دایر اون خود خط افاق حسی به اول آرون افاق اون داره افاقه واقعی اصلا سیاهه اون بالای 23 درجه اول که فجر کازه به حدود 10 دقیقه من حساب کردن در با دیدن در خارج اون مثل که نور میره بالا مستقیم مثل دم گرب و قرآن بعد در 18 درجه که آن فجر میدونن مثل یک توپ نور مثلا یک گله نور در روی افاقه 23 درجه دیده میشه بعد جواهش ها شوسه جلویی ای یه دفعه اون دایره افق دیده میشه اگر خیت عیادت رو اون دایره افق دو حدود دقیقه تا دوازده دقیقه وقت میگیره یا تا 15 دقیقه درک کنید پس اگر ما بیم آیه مبارکه این اینجور معنا بکنیم حتی یتوبیم خدا روز بعد و الان با ای وقت برادان اشاره وارد کردم حتی یتبین لکم خود این تبیین تجریه وقت در اینجا فقط میشه موضوعی به خلاف تصوری که حدث استاد پس حدث استاد که این مثال رو ده کردن چون ایشون فج رو یک امر واقعی میدونن الخیف العبی از این و الاسود کنایه از اون امر واقعی دقیقا سهمونه و لذا ایشون میگن چون واقعی لیالی مغنره باقی رو مغنره برمی کنه در هایالیه مغمره در اون وقتی که شب دیگه شما تجربه نمینین میتونین ببینید حتی این الان کران نورهای شهرها، انسان میخواست خوب تجربه بودوره یه جایی که از نور اندرورش نباشه بهلا چه این جای متوارف هم نمیشه مغمره که کجای خودش در این شهر متوارف هم دیده نمیشه اما چون ایشون اگه امر واقعی میذوران با محاسبات نجومی مثلا تبیین میشه خب این راجع به این مطلب برگردیم به اصل مطلب چون ایشون پس تا اینجا روشن شد که مردمی میشه هنسالی توضیح میدن در روایات در لسان عدله در قرآن کریم شما اگر کلمه قرط رو دیدین تبییم رو دیدین حتی تعلم دیدین کل شیء حلال حتی تعلمانه و حرامان به اگر این تعلم رو دیدین اینا به دو جوره بعض ها علم رو به نعنی و به هوا هواد اکثر و هواد متعارف مثلا متعارف این که علم به نعنی طریقیت باشه و در بعضی ها علم اون صفت نفسانی به نحوه موضوعیت احس شده این خیره متعارفه این دلیل میخواد. فرزاست همه کرام و صلی اللہ و